الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم رسول الله وآله الطيبين الطاهرين الرسومين تعالى مجمعين اللهم رفعنا نتركوا شهرين ورحمنا عرض شده که از مسائلی رو که در این مقدمات ها مطرح شدن که حضرت مرحوم استاد در امر سالس متعرض شدن بازورم چند تا مطلب برازن. مطلب دوم ایشان به حضرت تقسیم ایشان در کتاب مصباح اصول راجع به این است که این حالات سلاسه قطع و زن و شک بله این مربوط میشه به به اصطلاح به حکم فعلی نه به حکم به اصطلاح شعنی ایشان این رو از کردم در این مصباح اصول در این جلیه دوش به اصطلاح در این چاپ جدید در صفحه 9 فرمودن بعد در صفحه یازده توزیحی رجب مطلب دادن که دیروز خونده شد تدمتون متن اولا ایشونو حکم فعلی رو به همون تعبیری تفسیری که در کفایه آمده بیان کردم بعد ایشان اشکال کردند که این مطلب درست نیست چون از کردم صاحب کفایه بخصمه انشائی رو اون جایی که میدونن که انشاء باشه بدایع جعل به دایی بحث و زج نباشه یا به اصطلاح دیگه مثل عوامر امتحانی اونجایی که تهدید استهزاس زغن نکن تر عزیز الحکیم اینا رو ایشون حکم انشایی میدونن و اما اگر انشا بدایی دایی بحث و زج رو باشه ایشون اون رو حکم فعلی میدونن بعد ایشون برای مستاد از کلم این مبنای صابت که حکم رو چهار مرتبه برای حکم قائلن حکم اقتضایی حکم انشایی حکم فعلی حکم منجز مراد از حکم اقتضایی مرحله ملاکاته انشایی هم اون انشایه به داعی بحث و زرج نواشه است یعنی اونجایی که به این نباشه. فعلی فعیلی است که به داعی بحث و زرج باشه منجز هم دار که به مکلف اصیده باشه ایشان این طوری گفتن از کردم که مرموم استاد در حقیقت یک اشکار بود خود این مبنا دارند. یعنی اصل اشکال اصلا این تقسیم حکمی بین مراتب اخسام چارگانه یا مراتب چارگانه که مرموم صاحب کفایه فرمودن این قبول نمیشه لذا ایشون فرمودن که فعندن انشایی که انشایی که به داعی بس و ذهج نباشه لیست به مراتب حکم است این نیست. مثل حکم اختزایی رو دیروز عرض کرده مثلا حکم اختزایی رو حکم نیست اختزا حکم ملاکات حکم نیستن اختزا مثلا اینشون روشن انشاء تهدید تحدید کمافی قولی طالعه اعمال و ماشه توم و غیر زالک لا یطلق علیه حکم مثلا حکم نیست این انشاء بدای تهدید لیسه علت تهدید. این اصلا تحدیده حکم فل انشاء بهاد معنا خارجان از موضوع البحث لعدم صدق الحکم عليه حتی ما دیروز در خلال عباده کردیم که اصلا میشه گفت این صورت انشاءی اصلا استاد میتونین صورت حکم نیست انشاء هست تهدید هست اما نیست و عمل انشاء به داع بحث و الزج فیت لبا علیه الحکم و این لم یه یبلغ مرتبت فعلیه این فعلیتی که ایشون در اینجا دارن مرادشون تحقق موضوعه این اصطلاحی است که مردم آقای ناینی دارن در معنای فعلیت فعلیت حکم رو به تحقق موضوع می‌ذارن ولو حکم انشاءی باشه ولو حکم الهی باشه اما مثالی که دیروز عرض کردم خیلی مثال واضح فرض کنید الان شما تکلیف به نماز ظهر بعد از زوال دارید اما این حکم فعلی نیست یعنی فعلی بی این این به این معنا آقای خویی میخواد میفرمون اگر انشاب به جایی بعض و زرج بود این حکم میشه اما فعلیتش اون است که موضوع براش محقق بشه فرصوی مثلا شما حکم دارید که اگر مستطیعی بودین مکه بریم اما این فعلی نشده وقتی استثاعت آمد این فعلی میشه یا حکم دارید که انسان بالغ یا انسان عاقل نماز بخونه این بچه بالغ نشده به قصده انوز بالغ این اینجور چیزهایی رو مرحوم ناینی ازش تعبیر به موضوع میکنه این یک است، بازم این اصطلاح هم اصطلاح خود ایشانه ایشان قیود داره که در حکمی ها تقسیم به دو قسم میکنن اونی که در یک حکمی معتبره یا فوق دایره طلب یعنی طلبه اون نمیخوره اونا رو موضوع می‌دونه ایشان و اصطلاح هم. چیزهایی هستن که مفروض الوجودن مفروض حصولن مثل بلوغ و لذا چون مفروض الحصولن طلب به خود بلوغ تعلق پیدا نمیکنه. نمیگه یک دوایی مصرف بکنه اول بالغ بشه و بعد این کار رو انجام بده خود بلوغ خود عقل بهش تعلق تکلیف نداره فوق دائره طلبه اما تهارت تحت داره طلبه ایشون به تهارت نمیگه موضوع به بلوغ و عقل و وقت و این شرایط آمه حالا قدرتم هم علا کلامه که در مرافل زیادیشون قادل است. دقیق فرمودی؟ پس مرحوم نانی یک موضوع پیشی ایشان اون قیودی هستن که فوق دایره طلب هستن مفروض رو حصول اما اون قیودی که مطلوب رو نه اونا تحت دایره طلب هستن. مثل تهارت اون تهارت تحت دایره طلبه تحصیل صاطر وقت ظهر شده باید نماز بخونید میگه الان مثلا لباس ندارم خب برو لباس دیگه بپوش برو لباس پوش لباس بکنی اینا تحت دایره طلبه هستند در از اعده فوق دایره طلبه یک اعده تحت دایره طلبه اونایی که فوق دایره طلبه به اصطلاحشون اسمش موضوعه ایشان یه اصطلاحی برای فعلیت دارن ایشون میگن تا حکم موضوعش محقق نشه فعلی نمیشه من میگنم آثاری بار کردن که اخیراً متعرض شده این اصطلاح استاد همون اصطلاح استاد ایشانه لعدمه تحقق موضوعی فرخانجین یه مقدار میگم چون اینه که از موارث کلیدی است توی اصول شناخت مرحله فعلیت فهم فعلیت از حکم این نماهیه به فعلیت موضوعه این فعلیت موضوعش منشه خب مردم ها رو پوی باید که این اصطلاح ایشان غیر از اصطلاح صاحب که باید دیگه. این یک اصطلاح اون یک اصطلاحه. ولا ننتزم به عدم ترتبه اصلا اله حکم انشایی حال در معنا این که بگیم این حکم انشایی به این معنا خوب دقیقه مرادشون به این بنا یعنی هنوز فعلی نشده مثلا الان ما وجوب نماز ظهر داریم اما برای من فعلی نشده چون اذان نگفته زوال نشد ایشو میگه همین حکم هم الان تاثیر داره این حکم انشایی این الان تاثیر داره بنده هو اثر مهم و هو جواز الافتائه آثار دیگه هم داره بحث مقدمه هم داره الی اخری فئن المشتهد ذا علی رسول حکم الملاغ انشایی فی مقام تشریل الافتاء به و ان لم یرغ فعلیه. <تصحیح> ایشان ای به سایر کفایه ایشان ممکن که اینجا به فعلیت نرسیده مرادلاج اثر روش واقع میشه فعلیت اصطلاح ایشان نه فعلیت کفایه به فعلیت اصطلاح ایشان نرسیده اما به اصطلاح کفایه فعلیت داریم. از این متاسفانه جا به جا شد به به وجوب حج علالمستطیع و ان لم یکن او وجودند و به وجوب قطعیت سارق و ان لم تحقق سرقه چه خارج به آخری بعد ایشان مطلبشون رو ادعا میزنید که دیگه من نمیخوام واردیم خود دارم امطالعه بسنم خیلی هم میگوام این راجه به این مطلب حالا ما در این مناسبت وارد این بحث شدیم که اصلا معنای فعلیت و یا حکم فعلی چیه یه تفسیر حکم فعلی همینیست که الان از کفایه خونگی و چون مطلبی که به صورت بفکردی زمان و با قلعه استراتژیک و مهمه یه بار دیگه هم این مطلب ایشون رو از زبان شاگرد ایشان مرحوم آقای برو جردی بله ایشان در همین نهایت الاصول دیگه این مطلب معروفه در کنه کفای محمده من خیلی احجاری نبود که عبارت های برو جردی برای تأکید مطلب در این نهایت اصول که تغییر ایشانه از یه تغییر هم هست اون چیه اصولم و حاطر اصول اما این نگاه کردیم غالباً نهیدم اختلاف ظاهر این که مفصلتر و تر اختلافی نیست در صفحه 395 این چاپ جدید که شده ایشون داره که به عنوان مراتب خب اعلم انشیخ انال استاد قاله فرکی فاید سایر کتبه این حکم به مراتب افتضا و انشاء و فعلیه به که من دیروزم گفتم فر اولا هم فرقولا اوارت ان الان الاخر و ثانی داخل وستانی اوارت ان سادر لا بداء البعث در از اون مطلبی رو که استاد نرد تروندن با اینکه که ایشون شاگر صاحب کفایی نیسته همین شد تو کفایی هم هست در از همینه لا بداء البعث و زش این اسمش حکم است و حکم فعلی اوارت ان مرتب اینجا تأبیر ایشان تعبیر مرتبت البعث و زجبه اما استاد عباره بودن انشاء الحکم بداخل البعث و زجبه و رابعه عباره هم مرتبت وصولی هی الالعه عبد به عبد برسه بعد من مماید برسید فیه نظرون فه اینما ذکره یا ذکره من المراتب الارضعه نیست مراتب لحقیقت واحده بلیه امور متبایه هست بیان رو داره که انها در تحبیر نمایه ما اداکان و هنها حقیقت واحده مقبول به تشکیل و هیه ما تکن فی این رحده ذات مراسل و متفاوته بشته من این حفاظت رحیقت آفی جمعی این مراسل یه امر مقبول به تشکیل باشه مثل نور و ما نحن و فیلیزه که داره این مایه صحب و این اطلاق علیه اسم و خب این انشاع از صادر به داع البعث از این به و این ولی صدر این شاول مجرد انهازت دائی مثلا این که به دایی بعت نباشه یا خود مسال و مفاسد مراسب ضعیف این معنا باشن جز مراسبش نیست نه هم مثل از و مفصده مفصده علت تحقق و حکمه و من المعلوم عدم کونه مثل حاده الاله مرتبتا من المعلول و هم من جز و عدم کونهی من مراسب الحکم اوزه بله های مایسته سببی در اقل احکام یعنی ما علی و علی الزام به اعتبار مقارن سهاد الحق علم المکلب و مایقوم و مقام هم بعد ایشون خودشون مرحوم آر برو جردی و بر تحقیل انیقال ان الحق ان مرتبطین شعنی و فعلی بعد ایشون شعنی رو مثل آقای از صادر به داعن بأس او زشت لن انشاء علم و و من الوازهات عدم حصول الانبعات ابل انزجار من نفس دل انشاء مالم یا تعلق به العلم پس مراد از فعلی ایشان مرتبه علمه که دیگران تنجز بیه فعلاها دالای فناغر از المولا من انشائی حصول الانبعات مثلا من نفس انشائی بل یک شعال بث لیعلم ده لعب فیان بث که عبدم علم دوگی يمكن يكون صدور و لا یک ممکن صدور الفعل انر عبد احیانا به دائل احتیاط و به دوائن اخر قرر زن منر انشاء ار وجوده و عدمه واقعا سواء فی حسول ذالک الفعل منر عبد بله و فتأثیره فی نفس العبد این میداشو حس مکنم بگیر احتیاج نسکن یتوقفا علال علم به و فیهاده المرتبه مرتبه علم یه تحق در معروه حقیقت الحق اعنی الباعثی و الزاجریه و اما قبل از تعلق علم به فهو به امکان حکم حیزن حیثو انهو انشاؤن صدر بدال بس ولیکن حیثو لاییو مجننی افتر فی نفس المکلل و انیترست و علیه القرز انون علت غایی که انسان جر کرد یا تصفی فیاد دل به شعنیه فرش شعنی عبارتان اندال انشاء ول فعلی عبارتان نفس ها دل انشاء بعد سیواکی معلوم ها دل و قابلن لتأثیر فی نفسه این هم شد تأثیر تا اینجا یه تأثیر برای فعلی از طرف این آیان مخرش شد یک تفسیری که مراد از حکم انشائی حکم نیست که درش بحث زجر نیست مثل امتحان مثل تحلیل سه تحکم سه هزا. دو فعلی اون چیزی که درش هست درس دادن دو تفسیری بود که مرحوم ناینی میگفتن و, و استادم هم واشون موافقت کرده. و اون که حکم فعلی همون حکم شأنی انشائی همون انشای اما حکم فعلی عبارت از حکمی است که موضوعش در همون تفسیری که ازش در خارج محقق بشه اگر موضوع محقق شد حکم فعلی میشه پس فعلیت حکم این مثلا الان ما حکم به وجوب نماز ظهر فعیلی زرفت انشایی هست، حکم هست، جل هست، شابه جل گردیم که فعیلی نشده کی فعیلی میشه آن از آن گفتم وقتی ظهر شد، زوال شد، اونو حکم میشه فعیلی این تفسیر دوم از انشایی و فعلی. بالاتر است تنجور تنجور که به علمه الان، بالاتر از تنجور. آها منجز بعد از منجز و ما هدفمون خوب دقت بکنیم. کنید در این مسائل اینجور نیست که بیشیم برای خودمون یک حرفوی پادر هوا هم بیدنیم برای خودمون کیف یک تفسیری باید بکنیم که مطابق باشه با ارتکازات و اقلایی یا اگر کنیم هم مختلف اون کیف باشه ارتكازی رو که به نظر ما سلیتر و واقعتر به واقع عقلانی ما واقع اون جهد عقلانی ما نزیدتره و واقعی تره اون رو مطبعه بکنم الان تا اینجا دو تا تفسیر شد یک تفسیرم از فعلیت تفسیر بود که مرحب آقای گردی داشتر که مرادیشان از فعیلیت همون منجزه مرحله وصول به عبد این مرتبه به این حکم فعلی اون حکمیست که به عبد رسیده به علم پیدا کرده عبد یعنی به عبارت دیگر اون حکمی که میتونه تو عبد تأثیر بگذاره اون وقت اگر انشاء شد به حدی نرسید که در عرب تأثیر بگیداریم چه انشایی؟ اما به حد تأثیر گذاشت چون هدف از کردم قررز اقصایی از جنب عبارت از تحقق تکلیف در خارجه من توضیح رو چند بار از کردم هر فیلی باید داره غایات و معینه خودش باشد غایتی که انسان در جنب اعتبارت قانونی دو تاست یک هدف عدنا داریم یک هدف اقصا داریم هدف و علت غایی که عدناست ایجاد تحریک در عبد ایجاد بس و از شد که این هدف هیچ جدا نمیشه شما به مجرد این که گفتین آب بیار این هدف درست میشه ایجاد دارید هدف اقصایی هم داره تحقق آب در خارج این تخلف دوش میشه این هدف اقصاست اگه برجین ارزش این هدف افساز باید تاثیر در عفو باشه تاثیر کی میشه بعد وصول میشه پس خب روشن شد پس ایشان نکته قانونی که دارن بر این تفسیر و حکم فعلی چون میگن قرضه حق از هدف, هدف اعلای از جل و اعتبار تحقق شی در خارجی خوب این تحقق شی در خارج تا تاثیر در نفس طرف نداشته باشه که نمیتونه تحقق باشه پس فعلیت یا مثلا هم قرضه ادنا مثلا که ایجاد باعثیت باشه بدون تأثیر در نفس عبد امکان نداره که این اصطلاح این از محقق باشه بنابراین فعلیت به ایجاد این این تا این که چند تفسیر شد دو تا تفسیر شد حکم فعلی و حکم این البته این کلمه ی حکم فعلی یعنی به عنوان توصیف هم باید قائل به این مجازی بشین مرتبه فعلیت تفسیر چهارمی هم وجود داره که مراد از مرتبه فعیلیت مرتبه ابلاغ و ارسال رسول و انزال کتبه نه وصول الالعبد اون مرتبه تنجزه یعنی بهوار از این اخراب فعیلی شدن حک به این است که بعد از اینکه تصویب شد به اصطلاح ما بعد از اینکه که این شاب تعلق گرفت طبق وسائل معین وسائل ارتباط جمعی معین ابلاغ بشه مثلا ما کن نمعذبین حتی نبعث رسول در شرایط الهیه به صورت انزال کتب و ارسال رسول بود امروزه در زبان ما وسیله حسیل رسانه های جمعی روزنامه تلویزیون به این وسیله ابلاغ میشه. پس ما بگیم حکم فعلی یعنی هر حکمی که ابلاغ شد ممکنه حکم جعل بشه اما گاهی اوقات مصلحت در این باشه که ابلاغ نشه خوب دقت می‌کنی مخصوصا بنا اینکه تمام احکام الهی در همون شب مبعث جعل شده اما ابلاغش تأخیر داشته چند سال پنجم دهم مثلا تا حدود 5 سال بعد از مبعث مسلمان هایی ولو مختصر در مکه اینها نماز و درو کاتی با اینکه جل از اول بیش از درو کاتی بود ببخشید معذرم نمازی که تا سال 15 همره از درو کاتی می خوندن عدد نداشت صبح می ظهر می خوندن عصر می خوندن پیش پس می شب می خوندن روزی جا نداشت سال پنجم امر از کلیدت الاسراء و شب معراج مرتطر شد که صبح باش و ظهر باشه و عصر باشه و مغرب و عشا اما این از اول بود تقریبا سال لوک شمس از, از اول بود اما فعلی نشده بود یعنی چنین ابلاغ نشده بود پس مراد از فعلیت ابلاغه این هم یک تفسیر دیگه از خوبیه پس بنابراین در حقیقت میشه اینجور گفت کلام صاحب کفایی این هستی در همون مرتبه جل که به دعایی بحث و زرچ باشه میشه اینجور فعلی کلام این تفسیری که الان گفتن میگه نه بعد از اون انشاء بعد از ابلاغ و ارسال رسول و انزال کتب میشه فعلی کلام آقای برو جیدی میگه نه بعد از وصوله و مکلف میشه فعلی کلام مرحوم ناینی میفرمونه نه بعد از تحقق موضوع در خارج میشه فعلی درستن شد؟ این چیجوری معنی فعلیتی؟ خب همین دیگه اونا مخواند بگن نه تامور وجود موضوع حالا ببینید اجازه شون وقتی کمی کمه بعد من مطالب تامور این آیا به مجرد همین ابداع احتمالات یا با باز یک نکات قانونی را در نظر بگیریم یه نکاتی در اعتبارات قانونی که بدانیم کدوم یکی رو مخواند قرار بدیم ببینید مثلا خود انشاء حکم به داعی بحث و زد اگر بخویم خود مرحله این رو فعلی بگیریم خب باید ملتزم به بعض از لوازمش هم بشین این طور نیست که فقط بگیم معنای فعلیت اینه مثلا امسی ایشون ملتزم نیست ساب کفایی کسی که قائل بشه حکم به مجرد جعل فعلی است این قائلتا مناسب است که در بحث شباهات بدوی قائل به احتیاط بشه یعنی این مبنا مناسبت با حق چون این مبنا میگه شما دیگه به فعیلیت همین که جل کرد فعیلیتش تمام شد یعنی به مجرد جعل دیگه منشاء آثار میشه اگر بنا شد به مجرد جل منشاء آثار بشه این مثل خود رو سابکیباده غالی با قابل قوهه قابلا بیانه لیکن این مناسب است با محتب حق و تاره انشاءالله ما در محتب برایت این توضیحات عرض میکنیم یکی از محترلات در تفسیر حق و اینجور تفسیر کنه حق تاره بگیم اصولاً فعلیت حکم مجرد جعل همین که مجلس تصدیق کردی یا قانون پارلمان تصدیق کرد به مجرد جعل فعلی میشه و لذا نتیجه این طورواد بشه این وظیفه مکلف یا شهروند یا مواطن است که بره حکم رو پیدا بکنه خب فعلی شده تمون شد به این مقدار حکم فعلی شد لذا وظیفه این مکلف بره یک فحص بکنه اگر کردیم در این مسائل مباحث عقلی به معنای یه سهی محال است چنین است این حرفان اینجا نوازه خب این مطلب نفسه ممکن اینجا مشکل نداره. ممکن است یک جامعه اینقدر پیشرفت علمی باشه لحظه به لحظه که انسان بخواد تمام مسبببات م رو خیلی راحت مطلع ممکن است در این جامعه قانون اینطور باشه بگه هر هرچی مجلس تصیل کرد ما دیگه وصل زمین میین این شماست که باز راه فضاکن آشم اینه، رسائل امکانات وجود داره دقیقه به دقیقه مطلبه هیچ مشکل لازم نیست <تصفيق> <تصفيق> خیال نکنید عقلیه و معناست که مثلا استحاله داره بحث سر اینه که اونی که متعارفه این نیست متعارف ها این است که تصویر میشه بعد از تصویر یک نحوی ابلاغ میشه این متعارفه پس بنابراین این بحثی رو که ما در اینجا می‌کنیم یک اصطلاح حالا فرصم آرکوی اصطلاحشون اینه مرمونه خیلی خب چه شده لا مشاهده فقط بحثتر اینه که شما که این اصطلاح رو میاری باید اون آسال التضاماتی که لازمش هست ذکر بکنی و مناسبت هاش رو ببینی و اصولا اون زاویه بحث روشن بشه این تصور چهارمی که ما گفتیم در این تصور چهارم میگه فعلیت حق به اصطلاح عبارت از مرحله ابلاغه چرا؟ چون فعلیت حکم این است که مراد ما از حکم فعلی یا مرتبه فعلیت حکم در است که دیگه بیاد این حکم موضوع تنجز بشه خوب در قسم یعنی موضوع احکام جزایی بشه کدوم حکم منجز میشه حکم انشایی نه فرصیب مجزی تصیب کرده قانون خداوند متعال جعل قانون کرده اما ابلاغ نکرده هنوز این اگر شما علمم بهش پیدا بکنی آثار نداره جزا نداره احکام جزایی نداره این معنا شاید در خود روایات هم ازش بشه استفاده کرد. این شما بحث ما در براعت الله فرض ترائز و حد و حدودن و سکت ان اشیا لم یسکت انها نسیانن فلاست کل نفوها. شاید این معنی حدیث این باشه یعنی این باید به لغت قانونی بگیم بگیم حکم تا به مرتبه فعلیت نرسه این موضوع احکام جزایی نخواهد شد خوب دقیقه کنید پس بنابراین ما این اینجور تفسیر بدیم بگیم مراد ما از فعلیت اون مرتبه است در حکم که موضوع احکام جزایی میشه یعنی به عبارت او اخرا برق تنجز بار میشه. بلی. حالا کی داره؟ نه قبلش شده طرفی که قبل شده. حالا بله الان موضوع میشه تنجس. دیگه الان تنجس پیدا میکنه. ثواب و بار میشه. بارد بارد بارد بارد بارد بارد بارد اما اگر هنوز ابلاغ نکرده، ثواب و بار نمیشه. نوشنشون. پس بیاییم این تفسیر رو بدین البته ارز این ممکن است با شراسی فعلی ما باشه بعد ممکن است این تفسیر عوض بشه بگیم چون ما یک مرتبه تنجز داریم که در مرتبه تنجز موضوع احکام و جزاییست دقیق کردیم پس بیاییم بگیم فعلیت و عبارت از مرتبه است که مرتبه بعدش تنجزه این تفسیر قانونی پس یکی جعل فی نفسه داریم یکی مرتبه فعلیت داریم اون مرتبه است که ابلاح میکنن نتیجه ای این مرتبه این است وقتی ابلاح کردن تنجز پیدا میکنه ن... یعنی اگر ما موضوع میشه برای تنجز تا ما بهش علم پیدا کردیم خوب دقیق کنید در حقیقت مراد کفایی هم همین بوده بد بیان شده ایشون بخواید بگید اون حالات قطع و زن و شک نربوده به این حکم فعل و اگر ایشون این جور میگفت به جای لا بدائل میگفت فی مرتبه تل بهتر از بود بله بعد بیان شده البته هم تفسیر کرده هم لایه خودم هم تفسیر کرده همین فهمیدن لكن انصافا اگر این به جای او این جور میگفتن حالا اینطور شد یه دفعه انشاء الوهی نفسه است یه دفعه انشاء الوهی بعد از مرتبه انشاء به واسطه رسانه‌های جمعی داده شده به مرتبه ابلاغ رسید این موضوع میشه برای تنجز تنجز علم و قط و زنه علم و شک و زنه. این تنجزه حکم فعیلی موضوع رتفه تنجزه اما حکم انشاعی نه ملاکات نه شما یک ملاکی رو میدونید این ملاک رو اگر دونستین مخالفت هم کردین و اقوبر نداره چون اون ملاک باید جل بشه جل به شما برسه ابلاغ بشه بعد از این که ابلاغ شد اون وقت شما علم برون پیدا بکنید روشنه شد نکته فنی پس نکته فنی این است ما میخواهیم به حسب تفسیر قانونی رتبه فعلیت رو جایگاه در قانون اعتبارات و قانونی مشخص بکنیم. رتبه فعلیت قبل از علم مکلب نه علم مکلب و مروای گروژیدی مرتبه فعلیتی مناسب نیست ایشون مرتبه علم و وصول رو مرتبه فعلیت قرار داده این مناسب نیست وصول بعد از ال... ف... بعد فعلیته خود وصول معلوم شد آیه بروجردی خود وصول رو ضمن فعلیت قرار دادن ما آمدیم گفتیم نه قبل از وصول فعلیته فعلیتی ابلاغ با ابلاغ اونو فعلیت تحقق پیدا میکنه یتر تو بر فعلیت تنجز یقدر ثواب تنجذ عقوبات و بر ثواب و عقاب یقدر تبع سنت جو اما اون فعلیتی که مرحوم استاد فرمودن اونام درست شد میگم اصطلاح باطلیه لکن اون فعلیتی که ایشان فرمودن تاثیر در مقام انتصال داره یعنی شما الان نماز ظهر انجام نمیدید مون حکم تمامه هم شارع جعل کرده هم ابلاغ کرده هم به من رسیده بحث اون موضوع خراجیه اون موضوع خارجی تاثیرش تو رو امتزاله. بله بعه. بله بعه چرا انشائی دیگه؟ حرکت خب حرکت در ذات خودش، هر در نحو خودش. این, این رو آقای نائینی تصورشون اینه که الان حرکت نمیدینه. میگن حرکت نرم بده. حرکتش منازع خودش. تو این حرکت و این تحریک انشائیه. طبیعی که نیست. غیر از این حلالیشون اشکالش همینه خود دیگه در واجع معلقش خاص همینه اشکال در اون که بحث نداره جواب آوردم که بحث داره در در خودش این یه کلمه لازم نیست بحث خیلی باشه بحث بحث همون جاله چون انشائیه این دقت کنید این تحریک تحریک انشائیه تحریک واقعی که نیست یه تحریک انشائیه چون تحریک به بحث, بحث همون تو کجاست پس من الان حکم انشائی دارم مورده. مورده. مورده. مورده. حالا دیگه ایذو چون و خیلی کمه دیگه میخوام بعد فعلا برون اصل موضوعی قبول کنم تا برد پس من الان یک حکم انشاءی دارم خوب دقت کنیم این حکم فعلی هم شده یعنی چی یعنی ابلاغ شده حافظ و علی الصلاه و سوال المستا عقله صاد در اوج ابلاغ هم شده این حکم منجز هم شده چون من علم دارم بهش خوبه اما این حکم هنوز من انجامش نمیدم چرا چون بعد از نه این قد این نصیفان چون تنوذر نشده پس فعلیت بده نکرده فعلیت رو با این تفسیر ایشان بد نیست بگیم تفسیر او بدی اما این انصافاً خیلی فنی نیست اجازه بدیم؟ این تفسیر ایشان فعلیت قبل از امتصال خوبه راسته ما ممکن بگیم فعلیت جاش کجا سر اعتبارات قانونی جایگاه مناسب فعلیت قبل از تنجوز امتصال چون ما الان بحث اون در قانونه در سلخ اعتبارات قانونی اون که شعنه مولاست اون که که قانون قانونگذاره ما داریم اون رو تفسیر میکنیم بحث شده که, بحث شده که... بحث ده ده. چرا؟ بحث روی اونوان بعد از دو چه شد داره بحث اعتباری باشد بحث شد که... روشن شد پس به نظر ما اون که مناسب است با تفسیر قانونی خوب دقت بکنید. فعلیت رو بزنیم به اون مرتبه قبل از تنجز اگر بخوایم بزنیم به مرتبه قبل از تنجز و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اون بعث رسوله پس بنابراین اون عذاب متوقف میشه بر تنجز تنجز متوقف میشه بر فعلیت فعلیت متوقف میشه بر انشاء ولیزا اجازه بفرمیدی که خیلی وقت کمه ولیزا ما به جای این تفسیری که آیه بروجه دی قدس آقای بروجه از استادشون نرکن بعدم خودشون دادن ما ارز کردیم حکم خودش واقعش یکیه مثلا این چند تا نداریم همون مرحله اینشا اسمش حکمه حکم همون ما به جای این تعابیر آقایون اون ارز کردیم سه مرحله مبادی حکمه و سه مرحله متأخر از حکمه و لذا هفت مرتبه قرارش دادیم یعنی هفت تا عنوان سه مرحله مبادی حکمه مقدمات حکمه سه مرحله متأخر از حکمه حکم خودش یکیه همون حکم انشائی اون حکم اینشایی سه مرتبه قبل داره یک ملاکات این از قبل کرده ملاقات هم عرض کردیم امور تکوینی فی نفسه چون در قرآن کریم گاهی خود امر تکمینی آمده در قرآن کریم امر تکمینی به عنوان زمین ساز تشریح آمده اگر امر تکمینی از این زاوی یعنی از زاویه این که مقدمه بشه تمهیدی بشه برای اعتبارات قانونی اسمش ملاکاته پس اول مقام ملاکاته مرتبه ملاکاته بعد مرتبه حب و بغضه که او رو بخواد یعنی اون ملاک باید به درجه برسته که بخواد بعد مرتبه اراده و کراهت یعنی تعلق بگیره اراده او به تحقیق این عنوان در خارج بعد از این سه مرتبه جل میاد این مرتبه جل بعد از مرتبه جل ابلاغه که اسمش فعلیته بعد از ابلاغ تنجزه که علم مکلف و مصول مکلفه بعد از مرتبه تنجزه امتصاله که تحقق و عدم تحقیقشه در خارج پس سه مرتبه به عنوان مبادی جله این که بگیم حکم اختیزایی و حکم این این درست نیست حکم یکیه و اون انشاء سه مرتبه قبل از جله سه مرتبه بعد از جله اونی که مناسب با تفسیر قانونی و اونی که فعلا بنای عقلا هنوزم بر او هست این تفسیری است که من عرض کردم پس مناسب با اعتبار نمیخوام بگم مثلا مستحیل غیرش نه اصطلاحی دیگه دیدیم مرحوم صاحب کفایی از مرتبه جل اسمش گفتیم حکم فعیلی ما در اصطلاح خودمون مرتبه فعلی ابلاغ رو گفتیم حکم فعیلی مرحوم آقای بروجردی جردی رو گفت حکم فعیلی مرحوم ناینی مرحله وجود قیود به استاتحق موضوع, موضوع رو گفت حکم فعیلی این فعیلیتی که مرحوم آقای ناینی بگن برای انتصال خوبه خوب دقت خو کنیم و معروف این است که امتصال از شعون ابده این مناسب نیست تو تفسیرهای قانونی بیار اون مرتبه فعلیت که من گفتم از شعون مولاست امتصال از شعون عبده. ما این دو تا یعنی به نظر ما نمیخواهی بگیم استلاح مرحومانی باطل فی نفس ممکن نستان چه اما مناسب نیست با تفسیر قانونی به نظر ما با تفسیر قانونی و با معرفت حکم و اعتبارات و قانونی و شرح قانون این خیلی مناسب نیست مطلب رسابراتون بدیهی نشید به قبول نفر بود نه این که بخواهیم بگیم اون باطله اون باطل نیست شبشتش. شبشتش. ام... نه. نه لازم نیست شبون... یعنی مقام امتصال در اختیار عبد عبد که امتصال می‌کنه؟ و حسیت حقوق بدا یعنی اون مناسب میشه با مرحله امتصال اما اونی که مناسب میشه با تنجز اون مرحله ابلاغه و این جزه شعون قانون گذاره خوب دقت بکنید، این جزء شعون قانونیه یکی از وظائف قانون گذار ابلاغه یعنی ما میگیم شما تا ابلاغ نکنید این حکم انشاییه اگر ابلاغ کردید این حکم فعلی میشه و این مسئله که آیا این تقسیمی که گفتیم برای کدام از این مراتب انصافا این تقسیم برای مراتب فعلیته یعنی که این حرف کفای درست است این لم ان در اذا سفت الى شرعی یعنی حکم شرعی فعلی به این معنا بعد از جعل بعد از جعل و بعد از ابلاغ علم, علم پیدا کرد میشه منجع اما اگر به لکات علم پیدا کرد یا به حب و بغض مثل ان یوهب و التوابین و یحب المتوکلین مثلا متفحرین این معنای حب و دیگه مثلا یک روایت میاد که ان الله یحب اگر علم به حب پیدا کرد آیا ای برای او جعل میاره مگه اینکه به قرائن خارجی بفهمی که اینو تعبیر به الله حب و بغض موضوع بر این احکام نمیشن احکام جزایی نمیشن مقام ملاکات مقام حب و بغض مقام مقام انشاء فی نفسه موضوع برای احکام جزائی نیست مگر خود که خود مثلا برنامش این قرار بده و الا اونی که جزا میاره اونی که عقوبت میاره عبارت از یعنی اونی که عمد جزا سالان عبارت از مرتبه فعیلیت یعنی مرتبه ما قبل تنجز با علم او به تنجز میره. پس خود این مطلب مطلب صحیحیست لکن این تفسیر که گفته شده به نظر ما صحیح ترین تفسیر در فعلیت اینه و در حقیقت ما در بحث من اون بحث رو خوب چون ظاهره هفتونده تلتیل باشیم بخاطر ایام فاطمیه سامان الله ها من این اختصار رو الان اینجا بگم که آن فکر بکنن اصولاً بحث در اصول همینه تمام بحث در اصول چرا؟ چون ما میخواییم توی بحث و حجج و امارات توی بحث و حجج و, و اصول عملیه بحث ما در حج در امارات خوب دقیقه با اصول عملیه اینه بیان مرتبه تنجزه. اصولا اعتبارات قانونی خسلتی دارن. تا به تنجز نرسه موضوع احکام جزایی نمیشه. تنجز هم عبارت از وجود صورتی از حکم در زند. ما در اینجا داریم بحث می‌کنیم کدوم صورت وجود کدوم صورت تاثیر در پنجز داره کدوم یکی نداره و این صوری که در ذهن میاد به طور کلی به یک انقصام تأثیر میشه به دوتا صور ادراکی ما انتباعی ما مثل امارات من علم دارم که نماز جمعه واجبه صور ابدائی ما مثل استصحاب و خیاس اینا صور ابدائی ما هستند. میگیم شاره مقدس شراب را حرام کرد و, و چون شراب علتش به نظر ما اسکاره پس نبیز هم حرام این قیاسه این سوبر ابداعی ماست یا استثاب این آب سابقا نجس بود که کر نبود حالا منوز هم نجس حالو کر شده یا استثاب اینا سوبر ابداعی ما هستند. در سوبر ابداعی ما هم به طور کلی به طور طبیعی یا در سوبر ادراکی ما این یعنی در سوبر ابداعی ما یک دفعه خود حکم خود اون حکم شرعی به عنوان ابداع می کنیم این منحصر در قیاس استصحاب دیگه نداریم یه دفعه به عنوان مجهول باش میدیم خودش نمیگیم این میشه ihtiyaz و تاخیر براءتم که به نظر ما اصلا حکم اصل عملی نیست خلاصه بحث اینه که تمام این بحثی که خواهد آمد این در حقیقت نکته اساسیش به ما در قالب بحث های اصولی مشخص بکنیم تکلیف در چه صورتی متنجز می شود این خلاصه بحث صورت تن یعنی وجود تن حقیقت تنجز تن از وجود در ولذا طبق تصور ما دیگه نمیخواد بعدش رو با سوزیش ارزیلا که ما بیایید بگیم علم ان المکلف ذل کفزه اصلا ما کار موکلف و التفاوت منتفذ ما بحثمون این است که اعتبارات قانونی چی جوری تجسس پیدا می‌کنه؟ تفسیر ما هم تا اینجا روشن شد. اعتبارات قانونی یک ملاکات دارن، یک حب و بوخ دارن، یک اراده و کراهت دارن، یک انشاء دارن. اگر علم ما، تنجس ما بخوره به این مراتب تأثیر نداره. یک ادلاق داره. که اون میشه مرتبه فعلیت. اگر به مرتبه فعلیت تنجس انتباه صورت در ذهن شد، صورتی از او در ذهن آمد. ما داریم اون صورت رو بحث میکنیم اون صورت یا مثل قطعه یا مثل زن مثل اتوینا نه مثل این مناشه این زن چی این صورت ناقض از کجا بگر شده یا صورتی که نفس ما ابداعا کرده ابداعات نفس رو اسم روشیم اصول عملیه امتماعات رو روشیم امارا پس در حقیقت اگر بخیم بحث رو به یک صورت به اصطلاح مرتب قانونی در بیاریم اینه الان بحث. بحث ما در مرتبه سوم از اعتنوجزه بعد مرحله دوم ما بعد جهنه که مرتبه تنوجز باشه این مرتبه عادتا در بعد از کلیات قرار میگیره بعد از اینکه حکم فعلی شد یعنی ابلاغ شد پیغمبر اکرم فرمودن علی و امه مطللکم دین کو و منجه انو قره بکم در جنبه یا بعد کو ان نار الله بعد از تکمیل شریعت بعد اون حکم انتباع صورتی از او در ذهن ما ما دنبال این هستیم چه راه هایی رو باید تیب بکنیم تا این که اون صورتی که در ذهن ما انتباع پیدا کرده مثلا اگر آمدیم گفتیم اصلا انتباع نمیخواییم مجرد احتمال منجزه خب تا یک معناش هم اینه مجرد احتمال منجزه ما دیگه بحث قط وقتی احتمال منجزه بود خب قط بذاریم بحث تنجیزه قطع و تنجیزه ندارید. وقتی بناه شد مجرده احتمال منجز باشید بحث زن نداری، بحث قرض نداری. لذا این ملحظ الان روشن شد بحث ما بحث تنجزه و روشن هم شد راه ورود و خروج ما در مسئله چی بونه هست این شاید نبرای توضیحیم در بگیم خیلی خوشوزه و مطال هستن توضیحش <تصفح> باید به ازنی تبارکتا سلالله علا محمد